به نام خدا با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز داستان دختر بازرگان و هفت برادر این افسانه آزری یکی از افسانه های پرماجرا و پرتحرک است و می توان آن را دارای تمام خصوصیات یک افسانه به حساب آورد حوادث این افسانه اغلب به صورت روایت های جداگانه بیان شده است از قبیل هفت کتوله آینه جادو و غیره. نصر این افسانه زیبا و روان است. و اما شروع داستان. در زمانهای خیلی قدیم یه تاجر ثروتمندی زندگی می کرد به نام خاج ابوطالب. طالب. این تاجر همسری داشت به نام پریزاد و دختری به نام نگار. خاج علاقه زیادی به خانوادش داشت. وقتی مجبور می شد به خاطر تجارت به جهای خیلی دور سفر کنه تمام سعیش رو میکرد که که هرچه زودتر به خونه برگرده چون دلش برای همسر و دخترش خیلی تنگ می شود. یه روز بدبختی به اونها روی کرد و پریزاد همسر محبوب خاج ابوطالب طالب بیمار شد و بعد از مدتی مرد. تاجر خیلی غمگین و ناراحت بود و مدتها در ماتم و سوگ همسرش گریه و زاری میکرد. خاج عبو طالب بعد از مرگ همسرش دیگه نمیتونست به بازارهای دور جهان سفر کنه. حالا دیگه کسی رو نداشت که تو خونه از دختر عزیزش نگار مواظبت کنه. کم کم کار وبارش داشت بد میشد. خاج ابوطالب طالب چه کاری میتونست بکنه؟ مدت فکر کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که ازدواج کنه. راه دیگهی وجود نداشت. پس خاج ابوطالب طالب از گلناز زیبا که دختر یکی از بازرگانان سرشناس بود خاستگاری کرد. جشن عروسی مفصلی به پا شد و اون دختر به عقد خاج ابوطالب طالب در اومد. تاجر، عروس خودش گلناز رو به خونه آورد و بهش گفت دخترم نگار مثل تمام زندگی برای من عزیزه. از اون مثل فرزند خودت مواظبت کن. گلنازم جواب داد که خاطرتون آسوده باشه. نگار شما مثل دختر خود منه. سالها گذشت و نگار پنزدهمین بهار زندگیش رو هم دید. یعنی پنزده ساله شد. اونقدر زیبا بود که تمام شهر از زیبایی و هوش او حرف میزدند. جوانای زیادی به عنوان خواستگار براش اومده بودند در بین خواستگارای نگار یه چوپان ساده‌ای بود به نام مراد علاقه مراد به نگار اونقدر زیاد شد که دیگه نه چیزی می‌خورد و نه چیزی می نوشید از دلیل این ناراحتیش با مادرش صحبت کرد و مادر هم جریان رو به پدر مراد گفت. پدر مراد وقتی از عشق پسرش به یک دختر ثروتمند با خبر شد بهش گفت پسرم بی جهت خودتو امیدوار نکن تاجر هیچ وقت دخترش رو به مرد فقیری مثل تو نمیده بهتره که این فکرها رو از سرت بیرون مراد از شنیدن این حرفها به تلخی گریه کرد. پدر دلش براش سوخت دید که چاره ای نداره پس به خاستگاری دختر تاجر رفت. وقتی خاج ابوطالب از خیال پدر این پسر چوپان با خبر شد با ناراحتی اون پدر مراد رو از خونهش بیرون کرد. حالا پدر مراد رو در راه رسوندن این خبر بعد به پسرش میذاریم و از زن خاج ابوطالب گلناز زیبا براتون میگم. گلناز یه آینه سهرامیزی داشت که مثل آدم حرف میزد. اون هر روز با آینش صحبت میکرد. لباس قشنگ میپوشید و زیبایی خودش رو جلوی آینه ستایش میکرد. یه روزی که گلناز بهترین لباسش رو پوشیده بود جلوی آینه رفت و از آینه پرسید میخوام بدونم آیا تو دنیا زیباتر از منم وجود داره؟ آینه جواب داد بله هست. گلناز با عصبانیت فریاد زد چه کسی؟ و آینه گفت نگار نگار زیبا. با در این حرف گلناز خیلی ناراحت شد و آرامش خیالش رو از دست داد. مدد رفت تو فکر که چیکار کنه سرانجام تصمیم گرفت برای اینکه تنها زن زیبای دنیا باشه نگار رو بکشه گلناز خدمتکاری داشت که اگه لب تر می میومد و کارای گلناز رو انجام میداد. کافی بود گلناز اشاره کنه تا اون خدمتکار اون کارو براش انجام بده یه روزی که حاجی ابو طالب برای کار تجارت به یه جای دور رفته بود گل نازون خدمتکارش رو صدا زد و بهش گفت نگار رو به جنگل دور ببر و اونو بکش و بعد پیراهن خونالودش رو برا من بیار. خدمتکار که حاضر بود هر کاری به خاطر گل ناز بکنه حتی نپرسید که چرا و برای چی باید دختر تاجر رو بکشه. اما گفت چیزی بهش بخورون که اگه بخوابه برای من کار راحت تره. شد. موقع شام گلناز در غذای نگار داروی خواب ریخت نگارم به محض خوردن غذا خوابش برد. بعد اون خدمتکار اومد و نگار رو توی یک پارچه کوهنه پیچید رو شونش انداخت و اونو برد به سوی جنگل های دور دست وقتی که به جنگل رسید اون پارچه کهنه رو باز کرد میخواست سر دختر رو ببره که با دیدن اون زیبایی اون چهره خابالود و معصومیت نگار فکری کرد و گفت چرا باید این دختر بیگناه رو بکشم اونو همینجا میذارم و میرم مطمئنن گرگ یا یه حیوان وحشی میاد و اونو میخوره نگار رو روی زمین گذاشت و اون پارچه کهنرم روش کشید بعد یه خرگوشی رو شکار کرد خون خرگوش رو به پیراهن نگار مالید و با خودش برد که به گلناز نشون بده در راه بازگشتش به شهر پیش گلناز رفت پیراهن خونالود نگار رو بهش نشون داد و گفت که دستورت عملی شد حالا گلناز رو به حال خودش همینجا میذاریم که فکر میکنه زیباترین زن دنیاست و میریم سراغ نگار نگار سه روز و سه شب تو خواب بود آخر در پایان روز سوم بیدار شد و خودش رو وسط یک جنگل انبوه و تیره ای دید. فورا فهمید که نامادریش به خاطر حسادت به زیباییش این کارو کرده. مدت‌ها گریه کرد و های زیادی ریخت. اما اشک وقت درمان درد نیست. کمی که آروم شد، عشقاش رو پاک کرد، آهی کشید به سرنوش خودش لعنتی فرستاد و در اون جنگل انبوه به راه افتاد. رفت و رفت تا به کوه بسیار بلندی رسی. به اطراف نگاهی کرد و خونه رو در پای کوه دید. نگار که گرست نو خسته شده بود فکر کرد فقط دیو میتونه در یه همچین جای پرت و دور ای زندگی کنه من وارد اون خونه میشم. اگه دیو میخواد منو بخوره، هیچ مهم نیست. اقلا از این همه درد و رنج و عذاب خلاص میشم. نگار به سمت خونه رفت که یه دفعه یه سگ بزرگ و ترسناکی رو در اول اون در اون خونه دید. نگار خیلی ترسید اما سگ کاری بهش نداشت. بهش نزدیک شد و خودشو به نرمی به پای نگار مالید. نگار آه آرامش بخشی کشید و خیالش راحت شد و وارد خونه شد. به تمام اتاقها سر کشید. مقداری برنج، گوشت و روغن پیدا کرد. اما در هیچ هیچیک از اتاقها هیچ کسی نبود. نگار خیلی فکر کرد. بعد آسیناش رو بالا زد و شروع به کار کرد. اتاقها رو جارو کشید و تمیز کرد. بعد توی دیگ بزرگ پلویی درست کرد تا میتونست ازش خورد و بقیه رو روی آتیش ملایمی گذاشت که گرم بمونه. خورشید پشت ها رفت و شب فرارسید. نگار ناگهان صدای سوم اسبهایی رو شنید. توی گوشه پنهان شد و منتظر موند. بعد از لحظهی هفت پهلوان که هر کدومشون مثل رستم زال بودن وارد خونه شدند پهلوانا آدمای خوبی بودند و مردم هم اونها رو به نام هفت برادر میشناختن از ظلم و بیدادگری سلطان اون زمان به دامنه کوه بیستون پناه آورده بودند قله این کوه همیشه پوشیده از برف بود برادرا نگاهی به اطراف کردند و دیدن که ای اتاقا همه تمیز و مرتبه و پلو حاضر و آماده روی آتیش ملایه می داره بخار میکنه بعد با تعجب به همدیگه نگاه کردن چه علت میتونست داشته باشه؟ از ترس سگ خشن اونها حتی پرندم جرئت نمیکرد وارد خونه بشه بعد از اینکه هفت برادر پلو رو خوردن برادر بزرگتر گفت تا فردا سب میکنیم اون چرا که باید ببینیم خواهیم دید تمام شب و و صبح بیرون رفتن. به محضی که اونها رفتن نگار از مخفیگاهش بیرون اومد. رخت خوابها رو مرتب کرد، اتاقا رو جارو زد و یه دیگه بزرگ پلو پخت کمی از اونو خودش خورد و بقیه رو روی آتیش ملایمی گرم نگه داشت. غروب اون روز هفت برادر به خونه اومدن. مثل روز قبل، دیدن که اتاق همه جارو شده و پلو روی آتیش ملایمی آماده است. روز سپم هم به همین نحو گذشت. برادر بزرگتر گفت برادرا، یک کسی تو این خونه داره زندگی می کنه. وقتی که ما بیرون میریم اون کارای خونه رو انجام می ده و برای ما غذا درست می کنه و وقتی که بر می گردیم، پنهان می شه. برادرا با صدای بلند گفتن دوست عزیز خودتو به ما نشون بده اگه پیرمردی پدر ما خواهی بود اگه جوونی برادر ما اگه پیرزنی مادر ما میشی و اگه دختری خواهر ما میشی نگار وقتی این حرفو شنید از مخفیگاهش بیرون اومد پیش برادرا رفت و داستان زندگیشو براشون تعریف کرد برادران فریاد زدند خدا تو رو برای ما فرستاد. ما خواهری نداشتیم. حالا تو خواهر ما هستی. ما از هست تو محافظت و مواظبت میکنیم. اگر شونه ای خسته بشه تو رو روشونه یکی دیگه از ماها بذار. نگار خوشحال شد و از شادی صورتش گل انداخت و قلبش مثل گل شکفت. از اون نوز به بعد صبح هر روز برادر رو به گشت و گذار می و خواهر تو خونه می موند، اتاقا رو مرتب می کرد و براشون غذا می پخت. حالا نگار رو که شاد و خوشحال با برادرش زندگی می کنه رو به حال خودش می و به سراغ خاج ابوطالب طالب و زن حسودش گلناز می ریم. حاج بود طالب دخترش نگار رو خیلی دوست داشت. وقتی از سفر برگشت اولین چیزی که از گل پرسید این بود نگارم کجاست؟ گل ناز خودش زد به گریه و هق, هق و گفت دختر ما برای گردش به باغ هندونه رفته بود در اونجا اتفاق وحشتناکی افتاد گرگی بهش حمله کرد و اونو خورد. ببین اینم پیرهن خون آلودش. خاج عبو طالب به تلخی گریه کرد. مدت ها و سر خودش رو به دیوار میزد و ناراحتی می کر. تمام تاجرای شهر جمع شدند و تلاش کردن بهش دلداری بدهند. خاج عبو طالب هیچ مرسی و التماسی دخترتو بر نمیگردونه اما خاجه نتونست نگار زیبا رو فراموش کنه. از روزی که تاجر از مرگ وحشتناک دخترش با خبر شد هر شب اونو تو خواب میدید. اما زن خاج عبو طالب گلناز مقرور که فکر می که هیچ کس تو دنیا به زیبایی اون وجود نداره خوشحالتر از قبل بود و می خندید همه روز رو جلوی آینه سهرامیزش می نشست و با خودش ور می رفت و میگفت. حالا من از همه قشنگ ترم روزی؟ گلناز جلوی آینه زیباییش رو تحصیل میکرد که از آینه سؤال کرد گفت میخوام بدونم آیا تو جهان کسی زیباتر از من وجود داره؟ آینه جواب داد بله وجود داره گلناز با عصبانیت و خشم پرسید کی؟ آینه جواب داد خواهر هفت برادر که زیر کوه بیستون زندگی میکنه؟ گلناز از خشم داشت دیوونه میشد اون تمام خدمتکاراشو صدا زد و گفت در سیر کوه بیستون خواهر هفت برادر زندگی میکنه چه کسی حاضره بره و اونو بکشه؟ هیچ کدوم از خدمتکاراش این بار داوطلب رفتن و کشتن خواهر هفت برادر نبودن که سر خدمتکار تعظیم کرد و گفت خانم به من دوتا خدمتکار بدی تا برم و اونو بکشم گل ناز گفت برو اگه موفق بشی پاداش خوبی بهت میدن. سرخدمتکار به همراه دو خدمتکار دیگه راهی کوه بیستون شدن. اونها روزهای پشت سر همی رو راه رفتن و آخر به اون کوه بلند رسیدن. اونقدر بلند که اگه به قله اون سعود کنی و دستاتو دراز کنی فکر میکنی میتونی ستاره ها رو بگیری. اونا به در خونه هفت برادر رسیدن اما سگ نمیگذاش وارد مونه بشن مدت زیادی دور خونه گشتن تا به درویشی برخوردن سرخدمتکار خوشحال شد و پرسید درویش عزیز چه کسی تو خونه زندگی میکنه درویش جواب داد هفت برادر و یک خواهر سرخدمتکار گفت آیا میشه وارد خونه شد درویش جواب داد نه تنها تو بلکه دیو و اجراه هم نمیتونه وارد اون خونه بشه چون سگ اونها رو تیکه پاره میکنه بعد سرخدمتکار پرسید اسم خواهر اون هفت برادر چیه درویش جواب داد اسم اون دختر نگار زیباست سرخدمتکار مدت زیادی در جستجوی راه ورودی برای خونه در اون اطراف پرسه اما سگ حتی بهش اجازه نزدیک شدنم نداد سرخدمتکار بعد از ناامیدی به خونه برگشت و هر اونچور که از دربیش شنیده بود به گلناز گفت گلناز بعد از شنیدن این ماجرا به سرعت حد که خواهر هفت برادر کسی جز نادختریش نگار نیست پس هم از دست اون خدمتکار اول که خواستش رو اجرا نکرده بود عصبانی شد و هم از دست این سرخدمتکاری که نتونست وارد بشه در حالی که موی سرخدمتکار رو گرفته بود فریاد میزد قسم میخورم که اگه فکری برای کشتن اون دختر نکنی خودم تو رو تک تک میکنم سرخدمتکار وحشت زده شد گفت زندگی بانود رازباد من پیرزن جادوگری رو می‌شناسم که در این نوع کارها مهارت داره شاید او بتونه این دختر رو بکشه گلنز پاشو محکم به زمین کوبید و دستور داد به سرعت برو و این پیرزن جادوگر رو نزد من بیار سرخدمتکار با عجله بیرون رفت که پیرزن جادوگر رو بیاره از اونجایی که این داستان طولانیه از شما میخوام کمی صبور باشید و قسمت دوم رو در قسمت بعدی که براتون میخونم پیگیر بشید در اینجا شما رو به خدای بزرگ میسپرم. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین‌های سرزمینی سفر کنین جایی که ها و کوتوله ها زندگی میکنن کانال هزار افسان همونیه که دنبالشین هم. دنبالش. جایی که داستان‌های افسانه‌ای و اسطوره سراسر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه کانال تلگرامی هزار افسان